فکر بلبل همان است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون اشو کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خاجان است که باشد غم خدمتگارش جای آن است که خون موج زند در دل لع زین تقاون که خذف میشکند بازارش بلبل از فیض غلاموخ سخن ورن نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش ای که در کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش آن سفر کرده که صد قافل دل هم اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دابش صحبت آفیتت گرچه خوش افتادهی دل جانب عشق عزیز است فرو مگزارش صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاق به دو جام دیگر آشفته شود دستارش دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود ناز پرورد و سال است مجو آزابش